چرا ایران اصرار به استفاده از انرژی هسته‌ای برای تولید برق دارد. امروز استفاده از انرژی هسته‌ای یک ضرورت است. اما شما نفت و گاز دارید، می از آنها استفاده کنید. محمد جان خودت خوب میدانی که منابع نفت و گاز تمام شدنی است. در ضمن، استفاده از این منابع سوختی موجب آلودگی هوا و محیط زیست می شود. درست است، اما مشکل آلودگی همه جا وجود دارد. خب، میدانی انرژی اتمی به کاهش آلودگی هوا کمک می کند؟ نه نمیدانم. استفاده از انرژی اتمی حدود هشت تا ده درصد آلودگی هوا را کاهش میدهد. پس استفاده از انرژی هسته برای همه کشورها لازم است؟ البته ما از انرژی هسته در موارد دیگری هم استفاده می کنیم مثلا در چه مواردی؟ در پزشکی، داروسازی، کشاورزی، آموزش و تحقیقات علمی پس انرژی اتمی می تواند نقش مهمی در زندگی ما داشته باشد